يمسك میگیرد الغالی الغالي غران بها يستخدم استفاده میکند مطفاهه حريق کپسول آتش نشانی الاحساس هو الذي يمسك عطرك الغالي ويستخدمه كأنه مطفاهه حریق آدم بی احساس کسی است که عطر گران قیمتت رو میگیره و مثل کپسول آتش نشانی ازش استفاده میکنه